بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه سوم اعوذ بالله السمی العلیم من الشیقان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا نبي الشافي ازونو بنو عبد القاسم محسن بود الله اكبر الله اكبر الله اكبر على اهل بيت طيبين الله كانوا اذانهم اجمعين الى يوم الدين ما راجع به خدیجیه امامت بود و اون چرا که در چند جلسه اجمالاً عرض کردون اینکه بعد از رسول خدا صلی الله و خلیفه بعد از او چیز مطلعی را که ارز کردیم این بود که قضیه امامت در مذهب شیعه سه منصب دارد امام منصب اولش این است که بیان احکام و تفسیر آیات و بیان اعتقادات صحیح و بیان تفصیل و شرح احکام که رسول واسه واله واله نرسید که بیان اونها را بکنند این بر اخته امامه و خلاصی ما در جریان احکام دین و اعتقادات و اخلاق و تفسیر و امثال بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله باید رجوع کنیم؟ شیعه معتقد است به اون ائمه که خود رسول الله صلی الله علیه و فرموده به اونها باید رجوع کرد و از اونها گرفت مطالب را این جهات مطلب دومی که از منصفهای امام علیه السلام است اداره امور مملکت اسلامی و حکومت و کارهای مربوط به حکومت است چی باید بیت المال رو بین مسلمان ها تقسیم کرد با کی جنگ کرد با کی صلح کرد چگونه مملکت رو باید اداره کرد این وظیفه وظیفه امام است این هم مطلب دوم از مصنف‌های امام مطلب سوم که شیعه قائل است مقامات معنوی ائمه هست که مطالبی است مربوط به جهات معنوی و واقعی و ارتباطهای با عوالم دیگر علمش است که حدس قدرتش تا چه حد است و امثال مطالب معنوی امام صفات معنوی و کمالات معنوی این سه مطلب اساس بحث امامت است در مذهب شیعه راجع به مطلب اول که در تمام شرایط و در هر زمانی ما به او احتیاج داریم همین مطلب اولش که کردیم که ما باید دینمون رو از کی بگیم بعد از رسول خدا سواله واله و اختلافات الاموشال و هر که به یه طرف برد. یه دی شدن عبی حنیفه و اطبال عبی حنیفه یه دهی شدن اطباع شافعی یه دهی همبلی یه مالکی هر که به دنبال چیزی رفته ما چه باید بکنم <تصفيق> البته اینا رو تفصیلات زیادترش رو دادم ولی برای این که بعضی از رفاقا شاید همین شب اولین شبیست که آمدن خبر نداشته باشند که ما مخوام چی بگیم فهرستی فقدسر از مطالب گدشت عرض می کنید بنابراین ما چه باید بکنیم؟ اون چرا که عرض شد فیل جمله و تفصیل بیشترش خواهد آمد انشاءالله این از که خدای تعالی مردم رو سرگردان و حیران رها نکرده بعد از رسول الله وظیفه‌اش رو قرآن معین فرمودیه قرآن کتاب هدایت است تمام مسلمونهای عالم چه شیعه چه سنی چه هر مذهبی قرآن رو قبول دارن ما مدعی هستیم این طریقی ای که ما انتخاب کردیم طریقی است که قرآن به ما دستور داده هست. ما این چنین ادعایی داریم <تص> <تصفيق> و طریقه ما طریقه است که باید اتباع بشه یک کلمه از حرفای گذشته کلمه رو تکرار میکنم ولی تفسیری که قبلن دادیم عرض نمیکنم اون یک کلمه این بود که اولین کلمه این است که توحید در قرآن شریف منحصر به توحید در ذات خدای تعالی و توحید در صفات نیست توحید قرآن دائره اش وسیع تره. یکی از توحیدهای قرآن توحید در اطاعت است فقط و فقط باید اطاعت از خدا کرد و بس هر کی از دیگری اطاعت کند این مشرک است مگر اون کسی را که اطاعت می کنیم خدا خدای تعالی دست دور داده باشد که ازی اطاعت کن که در این صورت اطاعت ازی اطاعت از خدا من یتعر رسول فقط الله هر کسی که از رسول خدا پیروی کند و اطاعت کند از خدا اطاعت کرده توحید در اطاعت آیا ششت و متعدد خوندیم قبلا ولی اجمالا یکی از توحیدهای های قرآن این است که من بنده موظفم اطاعت فقط و فقط از دستورات خدای تعالی بکنم و بس یه دونه آقا داریم که اون خداست و تمام مخلوقات همه بنده اگر خدای تعالی فرمود که از رسول خدا اطاعت کن باید اطاعت کنیم اگر فرمود از علی اطاعت کن باید اطاعت کنیم اگر فرض کنیم از دیگری گفت اطاعت کنیم باید اطاعت کنیم ولی اگر کسی رو تعیین کرده ما بخواییم دیگری رو اطاعت کنیم یا کسی رو تعیین نکرده ما بخواییم به دل بخواه خود کسی رو انتخاب کنیم قرآن این رو شرک حسابش مید این باشه اینو تفصیلش و آیاتش و امتال این حال رو فرمه از کردیم با یکی از توحیدهای قرآن توحید در امر ولایت هست کسی آقای کسی نیست کسی سرپرستی کسی رو نداره همه برای خودشون انسانن هم. همه مخلوقات خدای تعالی هم. آقا فقط و فقط یکی اسم خدای تعالی است لکم من دون الله ولی ولیی برای شما غیر از خدا نیم بنابراین اگر کسی رو خدای تعالی به عنوان ولی برای ما معین کرد ای به دستور خدا ولایت بر ما دارد و اختیار امور ما رو دارد اگر معین نکرد فرقی بین او و ما نیست هره بنده خدا هستیم یه آقا داریم که خدا بود بنابراین توحید در ولایت یعنی ولی و آقای همه فقط و فقط خدا هو و الله و ولی و این رو قبلا ارز کردیم آیاتش رو قرص کردیم و تمام شدیم الان بعد از رسول خدا صلی علیه و آله موقعی این مطلب بگردیم آیا ولی خدا برای ما قرار داده است که از او پیروی کنیم راهی برای ما معین فرموده که از اون شخصی را که معین فرموده اطاعت کنیم یا نه ما را ول کرده را مطلبی را که شروع کرده بودیم این بودش که اولاً بایستی که این مطلب رو بدانی که خدای تعالی بعد از رسولش بنامه علیه مسلم رو معین فرموده و بر ما لازم کرده است که در امور دینتون از این سوال سآلتون و از اینها بپرسید بپرسی کجا فرموده این مطلب رو در قرآن شریف یه آیه ای داریم و اون آیه رو قبلا به طور فهرستوار گفتیم حالا مثلا تذکریان تفصیلش رو از کنم خدا تمام پلیدی ها و ناپاکی ها و شرک ها و کفر ها و معصیت ها و خطا ها شما ها رو پاک قرار داده اهل بیت رسول الله را پاک قرار داده این آیه قرآن و یوته در اکم این تو کلمات بزرگان به اسم آیه تدفیر آیه تدفیر در شعن رسول خدا و اهل بیت رسول وارد تود اینا پاکیزه اند از هر پلیدی از هر فکر باطل و شعر از هر اخلاق باطل و ناسازگار با دستور خدا از هر معصیت عملی از هر معصیت گفتاری حتی عمد و خطاب رو که اونو شوال عرض می کنیم اینا رو پاکیزه خدا قرار داد. بنابراین اگر من دنبال این آقا رفتم، اونی که اهل بیت است، که حال بعد باید بگیم. اگه دنبال این آقا رفتم، یقیناً من رو به خطا نمی بره. اون راهی رو میبره که خدا دوست داره. اون راهی رو میرسانم مرا که هدایت من در او و سلامت دین و دنیای من در اوست. چون بناست که او طاهر از هر پلیدی باشد. به شرک من رو اخلاق فاسدش نداره دروغ نمیگه عوضی به من حالی نمیکنه، کنه نمیذاره من در گمراهی بیفتم بنابراین این آیه شریفه اجمالا که <تصح> <تصح> تدریجم تفصیلش میار اجمالا میگه یک گروهی هستن که خدای تعالی اینارو رو پاکیزه قرار داره میگه یک آیه دوتا حدیثم خوندیم و مطالب گذشتم اون خاتمه پیدا می کنه یکی حدیث این بود که سنی و شیعه از رسول خدا سواله واله شاید در کتاب های ما با هشتاد سند که شاید چهر تاش چهر پنج تاش از سنی نقل شده سی تا سی و پنج شیش تاش از چیه نقل شده که سنی ها بیش از ما این روایت رو نقل کردم این می چی تو کتاب الله و اطریقی نیفترقا حتا یرزا علی قلب من دو چیز از بین شما میرم دو چیز در بین شما میگذارم و اون دو چیز دو چیز سنگین و پرارزش و گمنبهاست یکی کتاب خداست و دیگری اهل من است اینها از هم این ندارند سر هم کلمه اینا از هم جدای ندارن تا روز قیامت که بر من وارد بشه بر بنابراین اگر این دو تا از هم جدای ندارن اگر این آقایی رو که برای ما قرار گذاشته دروغ بگه این با قرآن جدائی داره اگر بخواد گناه بکنه با قرآن جدائی داره از قرآن جداست اگر بخواد یه اعتقاد فاسدی بر خلاف قرآن و بر خلاف دستورات رسول خدا داشته باشه این با قرآن جوده است عملش، گفتارش، شکلش، کردارش، اخلاقش این قرآن و این روایت از اون روایت های معتبری که سنی و شیعه کردم در کتاباشون مذکوره چقدر روایت داریم خدا می دانه چقدر روایت داریم راجع به اهل بی چونه و شیع روایت کردن خدا می دانه چقدر خیلی قبید یه روایت یه روایت دیگرم خوندیم که اون مثل اهل بی که سفینت نو من رکبها نجا و من تخلف انها غراب اهل بیت من مانند کشتی نوه هر کسی که سوار کشتی نوح شد نجات پیدا کرد و هر کسی که از اون تخلف کرد خلاص شد اهل بیت من همینند. اگر به اونها متمسک شدید نجات هست و اگر متمسک نشدی حلات هست پس تکلیف ما البته باید رو اینا بحث کنیم و بس تکلیف ما با سنیا معلوم شد چیه بر طبق آیه شریفه که اینها تاخرند و متحر از هر رجس و پلیدی و در اعتقاد و در اخلاق و در افکار و در اعمال و در تمام شون اینها طاهر و متحر و پاکیزه هستند اینها کشتی نوه هن هر که به اینها متمسک بشوند نجاتی یافته هر که متمسک مستقی نشود حلاک شده تو همکه دو مرز می شود و دیگه او امانتی گرون به حافیسی شما داشتم که از هم این ندارم تا قیامت بر من مارک شود یه مروایتی مرز می شود بر خود داشتنم بود از می شود آقای ابو ایوب انصاری ابو ایوب انصاری کی بود؟ ابو ایوب انصاری یکی از نیکان بود یکی از زورگان بود اون آقای است که رسول خدا والی واله وقتی از مکه هجرت کرد به مدینه وارد خانه ابو ایوب انصاری شد خب مسلمون ها قبل از اینکه پیغمبر تشریف بیاره به مدینه یه ایدهی مسلمان در مدینه درست شده بود معزز رسول الله علیه و آله مسعد بن امیر رو یکی دیگه یکی دوتای دیگه رو فرستاده بود مدینه و اینها قرآن میخوندن با قرآن خوندن اینها ایدهی مسلمان شده بودن پیغمبر که هجرت کرد به مدینه هر کی می‌گم یه خونه ماه به قمرت این مرکبی که بر سوارم این مرکب معموره هر کجایی که توقف کرد من اونجا میام پیاده میشم و وارد اون منزل میشم این مرکبم حالا شطور بود یا غیر شطور بود اومد در خونه و انصاری پیاده شد یعنی توقف شد حضرت هم که شد و یا الله وارد منزل ابو ایوب شدن منزل ابو ایوب خیلی کچیک بودش دو دوتا اتاق داد ابو ایوب هم این زن و بچه شد کرد توی اتاق یه ازاق دیگر هم در اختیار رسول خلاص وارده بوده خیلی خوب این آوار ابو ایوب که حالا ما کارش نداریم ولی این مطلب مربوطه به اوست خب از دوستان امیر المومنین هم شد بعدم بعد از رسول خدا هم در رکاب امیر المومنین سلام علیه بود حتی در جنگ جمل حالا من در بقیه جنگ ها بلد نیستم قدر متعقنش جنگ جمل در رکاب امیر با تله و زبیر و آیشه جنگی شد خیلی خوب جنگ دو جبل تموم شد امیر از شد ایوب ابی ایوب عبی و انساری اومد مدینه اومد خونه کن دیگه تموم شده و عزیزی ها اومدن گفتن ابو عزیزی تو که خیلی آدم خوبی بودی خدای تعالی به تو لطف که از برسول خدا در خانه تو وارد شده بود این یکی از مثلا افتخارات تو بود حالا تو لفتی شمشیر کسیدی مسلمان ها رو کشتی این اونهایی که میگفتن لا اله های لذا ابو عیوب گفتش که بیا این جلوشی که برای بگم اگه سرو گفتش آمد این دو تا دو نفر بودن که اعتراض ده. اومدن فعلو ابو عیوب تو اتاق نشستن گفت شما تو همین اتاقی که نشستین رسول خدا و والد تو همین اتاق نشسته بود من طرف دست راستش علی علیه السلام نشسته بود منم طرف دست چرف حضرت نشسته بودم اناس ابن مالکم که خادم رسول الله بود دم در بایی شده بود یه آقای در زد رسول خدا فرمود که اناس برود این که در میزنه اناس رفت در و پیغمبر سواله بایی از اون بالا صدا زد در رو باز کن به روی اممار تیید اممار وارد شد اممار وارد شد سلام کرد پیغمبر سلامش رو جواب داد فرمود مرخبم بکرد یا اممار همون جا همون جا یادم نیاره می جا بهش گفتی بعد از من اختلافاتی بین مسلمان ها واقع میشه به روی همدیه شمشیر میکشند و همدیگه رو میکشند. اما و تو در حق هستی و تو در راه حق هستی اگر تمام مسلمونها، تمام مردم عالم شاید تو روایت داره دیدی همه به راهی میرند فقط علی طعنایی از یه راه دیگری میره تو اون راه رو اختیار کن که علی میره راهی که همه مردم عالم دارن میرن نه اختیار نکن اون راهی رو اختیار کن که علی میره او تو رو از هدایت دور نمیکنه و تو رو به زلالت نمیاندازه من خیال میکردم مدتی شوال میگهدم این روایت از طرق شیعه نقل شده بعد توی کتاب های دیدم که ابی ایوب گفت خودم به گوش خودم از رسول خدا شنیدم که به امار فرموده امار اگر تمام مردم به راهی میرمند و از میشه از علی راه دیگری تعنایی داره میره تو این راهی را که او گفتد دوست دارد اون, دنب... اون راهی که او میره تو اون راه را انتخاب کن و به اون راه کن بعد بیدم که نده او سنی هم موجوده این مطلب اجاب خب همه دنیا دارن میرن یه راه هایی بر خود چی میگه به ما میگه اون راهی رو برشت علی علی یونمه القرآن و القرآن و ما علی لنگفتر قاد چقدر روایت داریم؟ خدا می دانیم علی یونمه الحق و الحق و علی چقدر روایت داریم؟ خدا می داند. بنابراین ما این راه رو را انتخاب کردیم که خدای تعالی به ما در قرآن رسول داده رسول خدا رسول داده روایات متواتر شیعه و سنی نقل کردن به چیزی نیست که ما خودمون گفته باشیم یه همچین مطلبیه ما این چنین مطلبی رو انتخاب کردیم سنی و شیعه این مطلب رو انتخاب کردن بعد از, این که بعد از این که آیه از این شد از این نما یورید الله لیوزه بان کمور رس اهل بیک نازل شد اون وقت سنی و شیعه رمایت رو نبود دارن. رسول خدا تا شش ماه میامد در خانه امیر المومنین برای نماز صبح که مخواست بره مسجد دست میداش اعتراف در یه دست این طرف یه دست اون طرف صدا میزد مثلا شاید به این تعبیر السلام علیکم یا اهل البيت السلام ما یرید الله به بانکم درسته اهل البيت و یوفت هرا کنید تدفیه ماه متوالی که نگیه کسی این آیه ما یک دیگه هست شیش مطور ما داره ما روشی هم داره شش ماه متوالی میمود دم خونه زهرات سلام و آله خادر خانه علی صبحی مخاطبه مسجد دستش تو این طرف و این طرف در میداشت و صدا می زد. از سلام علیکم یا اهل بی از سلام این ما یرید الله دیوشه و انکمون اهل احلال بی خیلی گذشت مطلب عرض ما عرض می شود به این که بنابراین ما اون راهی رو انتخاب کردیم که قرآن می ده. ما راهی رو انتخاب کردیم که رسول خدا برای ما معین کرده من یوتیر رسول فقط عطا الله کسی که از رسول متابعت کند از خدا متابعت کند بنابراین این چنین راهی رو ما انتخاب کردیم البته هر کدام از این ها این آقایون سنیا نشستن بر ما اشکالاتی درست کردن لیتیش در آیه تدخیره که این آیه تدخیر که گفت در اهل احل بیت نازل شده باشه و اهل بیتی که شما قبول دارین این آیه رو بریم تو قرآن نگاه کنید در ضمن آیاتی است که بر زنهای پیغمبر وظایفی تعیین میکنه یا نساء النبی چنین یا نساء النبی چنین یا نساء النبی چنی آیه در سوره احزاب خطاب به زنهای پیغمبره اگر طهارتی هم هست زنهای پیغمبر طاهرند نه مثلا علی فرزخون حسن حسین فاطمه من سلام و حاله این آیه مربوط به شما نیست که اینطور صفت سرخ خوش باید سدید خب اینا است که مثل فخر رازی و بیر فخر رازی تو کتابهاشون میکردن بر ما حضرگان ما هم که بیچار و چقدر زحمت بشید نشستم تمام این اشکالات رو از کشو کنارهای کتابای سنیا پیدا کردم جواباش هم نوشتم که کتابا موجوده منطقه بنده باید برم زحمت بکشم و این کتابا رو به دست بیارم اشکالات اونا رو بفهمم جوابای اونا رو هم بفهمم تا معلوم بشه حق با کی حالا یه کلمه رو میگیم اگر زنده مومدین برای میمونه برای هفته بعد اون یک کلمه اینه که اولا این مطلب معلوم باشه که آیاتی که راجع به این جهت وارد شده در سوره احزاب و تمام از که به زنها برمیگرده مؤنسه این یه جمله اون وسط زمیراش مذکره یا نسا اندری لستون احد منن نسا این تقیتون فلا تخزع مثلا فلا تخزعنا بالغول فيسمع الذي في قلبه مرض يونس ان نبي اگر شما طالب دنیا هستید بیان من طلاقتون بدم این آیات یه قصه هایی داره اگر شما طالب پول و طالب دنیا هستید بیا من یه مقداری به شما پول بدم و طلاقتون بدم برین به کارتون اگر خدا و رسول رو میخواد با زندگی من و زمیرها رو من آیتشون نوشته بودم او خواهدشو نایی بردم از می از این قرآن ها مرحمت کنی تا اینجا هستی من چشمم نمی می بله خلاصه همه زمیراش ملاحظه به فرمایی زمیرها معنیسی بله بله از می شود به این که یان سوان نبی اولش این, کنت ای بله این کنتون نتردن الله و رسوله بله قبل ازید قد یا ایها النبی قل از واجه ای بیغمبر زنات بگو این کنتون نتردن الحیات الدنیا و زینتها اگر طالب دنیا هستید و طالب زینت دنیا هستید فتعالینا امتر کن و اصرح کن سراخن جمیلا بیان یه چیزی بهتون بدم و شما رو طلاق بدم و رخا کنم و برم و شما هم رو رخا کنید و بهت بکار کنید و اینکنتون نتر ادن الله و رسوله و دار الاخره فإن الله أعضل المحسنات من کنه عجراً عظیما شمرت به یا نساء النبی من یعت من کن به فاخشت مبینه یوزا افله العذاب هر کسی گناه بکنه از شما عقابش دو برابر دیگرانه و کان و ذکانه و علا ذالکه و کان ذالکه علالله یسی را خیلی استونه برای خدا که دونا رو اقاب بیشتری بکند از دیگران و اگر کسی از شما نیفوکار باشد و بنده خدا باشد و مطیع رسول خدا باشد و عمل صالح بکند عجرش بیشتر از دیگران یا نسان نبیل از سنن که است من از فلا تخزانه بالقول فقط مالذی فی في دهین مرض و قلنا قولا معروفا و قرن فی بیوت تو خونهاتون را بیان لا تبرج تبر رجل جاهلیت الاولا مثل زنان جاهلیت را نگفتیم این تو خوچه ها نماز اقنه صلاح و آتین از و الله و رسوله تا اینجا تموم شد اینما یرید الله لیده و انکم رسه احلال بید. تمام زمیرهایی که تا اینجا میخوندیم همه معنیس بود این از اینجا شروع میشه زمیر مذکر یقنوت نه و من یقنوت منکن نه نوتها اجرها مراتین از سنک اهد منن نسائن تقیتون نه بلا تخزن نه فیات مالذی قرنفی بیوت کن نه بلا تبرج نه همه زمیر همان نهست یه دفع اینجا زمیر مزد کرد آیا این دوتا پشت سر هم نازل شده؟ آیا این آیه اون چرا که بر حسب روایات شیعه و سنی این آیه شریفه که انما یریذ الله لیوبه بانکم اهل البیت این تنهایی نازل شده این تنهایی نازل شده اون وقتی نازل شده, وقتی نازل شده که رسول خدا که خانه ام بود یه پارچه ای چیزی روی خودش کشیده بود و علی وارد شد علی را مردو برشید اول نمیدونم ترکیبشه یادم نیست دهراش آموالی ها وارد شد بعد حسن وارد شد بعد حسین وارد شد آخر علی وارد شد همه رو برد زیر این مثلا چیزی که پتو بود هرچی بود انداخته بود رو خودش همه رو این زیر برد و گفت خدایا این ها اهل بیت منم از اینها ها ریس و قلیدی رو دور کن ام مسلمه که زن پیغمبر بود سنی و شیعه اینا را ربایت کردن و زن پیغمبر بود و این قضیه تو خانه او اتفاق افتاد سرش رو کرد تو اتاق گفت یا رسول الله منم جز اینا هستم فرمود نه تو حق نداری بیای اینجا زیر این پتو مثلا حدسی بوده تصریح رسول خود سنی و شیعه کردن بعد از این که عرض کرد خدا یا اینها اهل بیت من هستن اینها رو از خلیدی دور قرار بده این آیه نازد خب بنابراین آیا این آیه مربوطه به زنای پیغمبر و خب همه زمیراش مذکر بود چرا این یکیش موننس بود چرا اینا مذکر شد تمام آیات قبلی و بعدی بود. باز لیوز حوان کنه وزخور نمایتلا علیه کنه باز دو مرتبه رفت سراغ زنا وزخور نمایتلا باز زمیران مهننس شد خب این آیات قبلی و بعدی همه مهننس این وسط این آیه جوری شده که زمیرش مذکر شده تمام این آیات قبلی و بعدیش اغلبش حالا همش نباشه یک نشانه ای از مذمت و بدگویی این زناست که شما اگر آدم بدی بودید دو برابر دیگران اقاب داشتین اگر دنیا رو میخواییم بیان من رهاتون کنم اگر نمی‌دونم چی چی لا تبرج نتبرجل جاهلیت الاولا مثل زنایم زمان جاهلیت نرین از خونتون بیرون دقلقه بین مسلمون را بندازین زنگ جمل را بندازین آیش آخر این کاره بود خب حالا تمام اینها همه مشتمل برای یک مذنمت از اینا یک دفعه این وسط ها پیدا شد این نما یوریدو لاله یو زهبه انکوم و یوته ترکم تدفیران خدا میخواد رز رو پلیدی رو از شماها دور کنه و شما را پاکیزه قرار بده دومرتقه بعدش اثر سر باز این آیه اولا زمیراش مذکره و بقیه آیات قبلی و بعدی زمیرها موننسه علاوه بر این آیات قبلی و بعدی متضمن یک مذمت و بدگویی و از میشن معلوم میشه یک عیب و نقصانی در این زنها بوده اینا رو تذکر میده یه دفعه این آیه وسطی میاد اینها رو پاکیزه قرار میده این آیه رو بر طبق روایات سنی و شیعه این تیکه تنها وارد شده. چرا حالا این آنجا وسط رفته؟ احتمالی داره قویان که خود رسول الله الله علیه و آله دستور داده اینو این رو این وسط من یه وقتی شاید دیدم ولی اندت مراجعه هنوز نکردم شاید ده. یکی از بزرگان میگه علت این که رسول خدا دستور داده باشه که ایرا این رو بذاره وسط اگه جدا بود اونایی که از اهل بکیف نمی کردن این آیه رو یه تصرفی درش میکرده این رو گلشته اینجای که خلط مبه بشه برای اونا و خیال کنه که مثلا یاد بحانه ای داشت به حال، به اینو کار نداریم ولی اونی که من درد میکنم پس بنابراین این آیه بر تبقه روایات و قضیهش هم همین بود که ارز کردم این بچه ها رو و زهرات سلام الله علیه ها را و علی علی السلام را جمع کرد و از که خدای اینها اهل بیت من تو اینها را پاکیزه قرار بده این آیه نازل و کیفیت جمع دقیق آیات در دست ما نیست شما مراهزه برماید قرآن ها رو بعضی از قرآن بلاش نوشته این سوره سوره مکیست الا آیه فلان که مدنی است خب یه آیه مدنی اومده تو سوره مکی حالا اینا چطور شده آمده؟ جمع کننده ها مثلا به سلیقه خودشون جمع کردن؟ یا رسول اللہ و واله دستور داده به هر حال این آیه بر طبق روایات جدای از اون آیه است زمیراش بوده این یکی مذکره؟ آیات دیگه مذمت و ملامت اونهاست این تعریف و کمال امتنان و لطف در حق اونهاست اینا به هم دیگه نمیخورن بنابراین نمیتونیم بگیم این آیه در حق زنهای هم ندیگر نمیتونیم ای رو این رو اشکالی که کردن به ما خود گفتن اگه در حق ها بود تو قایدش این همه ای اونا زمیراش مهندس بود اینم مهندس بود بود قایدش این بود که این جمله بین اون جمله ها واقع نشه باز دو اثر اول تا یه مدتی مذمت بعد این آیه بعد دو مرتبه یه مدتی دیگری باز باز پس فنابراین این اشکالی که سنوی به ما کردن این اشتغال وارد نیست با روایت خودشون که هفتاد تا هشتاد تا نمیدونم کمتر و بیشتر اینا رو دیگه هر کی حال داره و می‌خواد زحمت بکشه باید بره ابوقات رو نگاه کنه باید بره القدیر رو نگاه کنه باید منتقرو می می‌شه بین که غایت المرام رو نگاه کنه تفسیر برهان رو نگاه کنه یا کبسیر برهان هشتاد روایت از تونی و شیعه در ذیل این آیه مثلا ذکرده علا کلال اینا را کسی حوصله داره حال داره از طلب ها البته بران زحمت بکشن کنم ارزشمنده و مخیده و خوب داره. من این آیه یکی از اشکال که بوده که در این آیه هست باقیش باشه این دلم بسه اینکه که تا بعد برایش گیره تو اللهم اکره آمان آمان